آیا تا کنیم از مطالبات خدا در زندگیتون یا پرداخت مالیات تجربه کردین؟ عزیزان، به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن مطالعه کتاب مقدس به انتهای انجیل متا رسیدیم و حالا درباره آخرین روزهای زندگی مسیح که با شاگردانش بود و به اونها تعلیم میداد، مطالعه خواهیم کرد. خوشحالیم که تصمیم گرفتید به ما بپیوندید. این باعث خوشوقتی ما هست که کلام خدا رو به همراه شما مطالعه می حالا به درس امروز معلممون گوش می به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. ضمن بررسی انجیل به تعالیم و ارزش‌های های ایسای مسیح نگاه کردیم. به جایی رسیدیم که عیسی با رهبران مذهبی گفتگوی خسمانه ای رو شروع کرده و از اونجا به پای کوه زیتون می رسیم و بعد به بزرگترین نقطه عطو زندگی مسیح، بحران مرگ او، قیام و سعودش. بعضی از اون رهبران مذهبی خیلی سیاستمدار بودن. در باب 22 می بینید که عیسی به سؤالات این سیاستمداران پاسخ میده و در طی اون تعلیم بزرگ در مورد خدا و قیصر رو عنوان می کنه. رهبران مذهبی با انگیزه سیاسی از عیسی پرسیده بودند آیا پرداخت مالیات به قیصر مجاز هست؟ و عیسی از اونها خواست که سکه ای به بدهند بعد از اونها پرسید تصویر چه کسی بر سکه حک شده اونها گفتند قیصر بعد عیسی گفت پس آنچه را مال قیصر است به قیصر و آنچه را که مال خداست به خدا بدهید کاربرد واضحش اینه که تصویر خدا بر روی شما حک شده پس خودتون رو به خدا بدید تصویر قیصر روی پول حک شده پول رو به قیصر بدید خدا چیزی رو که مال قیصر هست نمیخواد اما گاهی قیصر چیزی رو میخواد که مال خداست شاید گاهی قیصر خود شما رو بخواد براساس اساس تعالیم عیسی وقتی او شما رو بخواد نمیتونه به دست بیاره قیصر گاهی بیعت کامل شما رو خواهد خواست مانند قهرمانان بزرگ ایمان شما وقتی تسلیم قیصر نشید شاید به مرحله نافرمانی مدنی برسید. این به نظر میرسه اساس جواب عیسی به رهبران مذهبی بود در باب 17 میبینیم که عیسی چیزهایی رو که مال سر هست به او میده عیسی مالیاتش رو پردازه. فکر میکنم در این داستان تنزی نهفته هست رهبران مذهبی نزد پتروس اومدن و پرسیدن سرور شما مالیات میده؟ پتروس سیاستمدار و یا الهیدان نبود تحت فشار این سوال پتروس گفت بله البته که میپردازه بعد خداوند رو صدا کرد شمعون ملاحظه کنید که هر وقت پتروس اشتباهی میکنه خداوند رو شمعون صدا میکنه پتروس تسلیم فشار این سیاست مداران شد و حرفی نسنجیده زد عیسی پرسید شمعون تو در این مورد چی فکر میکنی آیا فرزندان پادشاه باید مالیات بپردازند پتروس پاسخ داد نه این مالیات که از اون صحبت میکردند مربوط به معبد بود بعد خداوند گفت اون معبد خانه پدر منه پس من نباید مالیات بپردازم اینطور نیست فکر می کنم بعد احتمالا پتروس خیلی ناراحت شد که چرا این حرف رو زده اما ایسا گفت برو و یک ماهی بگید و در دهانش سکه های طلا خواهی یافت با اون سکه ها مالیات خودت و منو پرداخت کن فکر می کنم ایسا کاملا تصریح کرد که او نباید مالیات معبد رو پرداخت کنه اما برای ما سرمشقی به جا گذاشت به هر حال فکر می کنم تعلیم او در اون شرایط جنبه تنز هم داشت در متا باب 22 آیات 23 تا 33 به فیلسوفا جواب میده انواع رهبران مختلف حضور داشتند فریسی ها شدیدا متاسب و مذهبی بودند اما صدوقی ها مثل روشنفکران امروزی بودند صدوقی ها به معجزات خارقلاده العاده باور نداشتند به این دلیل که میبینید اونا غمگین هستند اونا به معجزه قیام ایمان نداشتند مسئله قیام از مردگان مسئله مورد مناقشه اونها بود صدوقی ها نزد عیسی آمدند و قانونی را که در تسنیه 25 هست مطرح کردند که می گفت اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد پس زن آن متوفا خارج به شخص بیگانه داده نشود بلکه برادر شوهرش به او در آمده او را برای خود بزنی بگیرد و حق برادر شوهری را با او به جا آورد آنها گفتند اگر این واقعه چند بار اتفاق بیفته، و همه برادران بدون اولاد بمیرن و این زن هم بدون اولاد از دنیا بره در روز رستاخیز کدام یک از برادران شوهر او خواهد بود عیسی جواب داد شما در اشتباهید نه از کلام خدا چیزی میدانید و نه از قدرت او در روز رستاخیز کسی نه زن میگیره و نه شوهر میکنه بلکه همه در آن عالم مانند فرشتگان آسمانی هستند در این گفتگو عیسی نه تنها به سوال اونها پاسخ میده بلکه حتی از اون فراتر میره و به ریشه حقیقی سوال اونا میپردازه ریشه سوال اونا این بود که به رستاخیز باور نداشته عیسی بلافاصله فاصله به مسئله معاورات طبیعه میپردازه و میگه خدا در کتاب مقدس میفرماید من خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب هستم حالا او خدای مردگان هست یا خدای زندگان البته این نشون میده که ابراهیم، اسحاق و یعقوب زنده و وگرنه خدا نمیگفت من خدای اونها هستم اگه اونها زنده نبودن خدا باید میگفت من خدای ابراهیم بودم اما خدا گفته من خدای ابراهیم هستم به این ترتیب عیسی به تعلیم کتاب مقدس در مورد رستاخیز تمرکز میکنه رسولان هم در کتاب اعمال همون کار رو میکنن و وقتی رستاخیز عیسی رو موعظه میکنن میگند اگر رستاخیز حقیقت داره هر چیز خارق العاده ای میتونه حقیقت باشه وقتی که عیسی به رهبران مذهبی پاسخ میده، موضوع واقعی اینه. آیا به ماوراءالطبیعه باور دارید یا نه؟ به نظر میرسه وقتی عیسی به صدوقیان پاسخ میده، استراتژی او این بوده. عیسی به در در متا باب 22 پاسخ میده. یکی از فریسیان از علمای عهد قدیم نزد عیسی میاد و میپرسه: ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟ عیسی در پاسخ این تعلیم شگفتانگیز رو میده و میگه: خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. وقتی او به موعظه سر کوه رسید، یادتونه که گفتم سه دیدگاه در زندگی هست که باید خوب یاد بگیریم. باید به درون نگاه کنیم، باید به بالا نگاه کنیم و بعد آماده میشیم که به اطراف نگاه کنیم و بخشی از راه حل عیسی باشیم. در این دو فرمان خلاصه عیسی به ما یاد میده که چطور اون سرنگاه رو داشته باشیم. وقتی به بالا نگاه میکنی محبت کن خدا رو محبت کن وقتی به اطراف نگاه کنی محبت کن همسایت رو محبت کن وقتی به درون نگاه کنی محبت کن خودت رو محبت کن حالا وقتی عیسی میگه خودت رو محبت کن منظورش این نیست که هر وقت از جلو آینه رد میشی باید بیستی و خودت رو پرستش کنی باید بفهمی منظور او از این چی بوده عیسی از خیشتن‌پذیری صحبت میکنه از عزت نفس حرف میزنه در مورد خودتون خوب بیاندیشید همون چیزی رو در مورد خودتون بگید که خدا در مورد شما میگه. او میگه شما ارزش دارید. این تعلیم بسیار زیبایی هست چون وقتی عیسی به این الهیدانان پاسخ میده به ما میگه که در هر سه این مسیرها محبت کنیم، به طور خلاصه میتونیم این متن زیبا رو اینطور تفسیر کنیم. میتونیم بگیم عیسی به ما اینطور تعلیم داد. خدا رو تماما محبت کنید، خودتون رو درست محبت کنید و مردم رو بی و شرط محبت کنید. وقتی به باب 23 متا می رسید، متن مهمی در مورد فلسفه رهبری مسیحی می بینید. یادتونه در متا 20 وقتی خانم زبدی از عیسی خواست که به پسرانش در پادشاهی او شعنی بزرگ داده بشه، عیسی به او و شاگردان گفت کسی در میان شما از همه بزرگتر است که خادم همه باشد. در اینجا هم عیسی چیزی مثل اون تعلیم میده فقط کمی مشخص از اون مورد. این جاییه که گفتگوی خسمانه بین عیسی و رهبران مذهبی به اوج خودش میرسه چون عیسی با اونها به خاطر فلسفه رهبریشون برخورد میکنه رهبران مذهبی زمان او با تعالیم عیسی در مورد رهبری مخالف بودند عیسی به مردم میگفت این علمای دینی دوست دارند که مردم اونها رو استاد خطاب کنن و اونها پدر بگن عیسی میگه اونها دوست دارن در کوچه و بازار مردم به با اونها سلام بدن اما عیسی میگه شما مثل اونها نباشید و از فلسفه رهبری اونها تبعیت نکنید اجازه ندید شما رو استاد خطاب کنند چون یک استاد دارید و همه شما با هم برادرید. اما شما اجازه ندید کسی شما را استاد خطاب کند چون یک استاد دارید و همه شما با هم برادری و کسی را پدر خطاب نکنید چون تنها یک پدر دارید که در آسمان هست. نزارید به شما معلم بگویند چون یک معلم دارید و او عیسی است استاد و پدر و معلم شما خدا هست و همه شما با هم برادرید. ایسا فلسفه رهبری را در اینجا با جزئیاتش ذکر میکنه که باید الگوی فلسفه رهبری در کلیساهای امروزی باشه. اگر فلسفه رهبری که ایسا در متا 23 شرح میده اساس فلسفه رهبری در کلیسای ایسای مسیح باشه، کلیسا شبیه هیچ تشکیلات دیگری در دنیا نخواهد بود. سالها پیش مشایخ کلیسای ما از شخصی که مدیر چهار قسمت در نیروی دریایی بود خواستند که مدیر کلیسای ما بشه دو سالی از مدیریت او در کلیسای ما میگذشت که یک روز به دفتر او رفتم مضطرب نظر می‌رسید بالاخره گفت هیچ جا مثل کلیسا نیست هیچ چیز مثل کلیسا نیست ترجیح می‌دم یک کشتی جنگی رو اداره کنم تا یک کلیسا رو چه چیز مدیریت کلیسا سخت هست؟ فلسفه رهبری کلیسا نباید از دنیای تجارت اقتباس بشه کلیسا تجارت نیست کلیسا ارتش نیست. بنابراین نمیتونید کلیسا رو مثل تجارت یا ارتش داره بکنید. کلیسا رو چطوره داره میکنید؟ ترکیب رهبری کلیسا چیه؟ اگر بفهمید عیسی در متلبیستو سه چی میگه، اون وقت میفهمید که هیچ چیز مثل کلیسا نیست. نمیتونید هیچ چیزی رو در این دنیا با کلیسا مقایسه کنید. بنابراین فکر میکنم خیلی مهمه که روشها و متدهای تجارت رو وارد کلیسا نکنیم. و سعی نکنیم کلیسا رو مانند مؤسسه ای تجاری مدیریت کنیم ما نمیتونیم ذهنیت سلسله مراتب مافوق و مادون ارتش رو وارد کلیسا بکنیم چون کلیسا سازمانی تجاری نیست کلیسا سازمانی نظامی نیست باب 23 انجیل متی به ما نشون میده که از نظر عیسی سبک رهبری کلیسا باید چطور باشه این تعلیم عیسی آشکارا توبیخ رهبران مذهبی بود رهبران مذهبی سبک که رهبری رو داشتن که از نظر عیسی مردود بود این تعلیم عیسی توبیخ شدیدی برای رهبران مذهبی بود وقتی مت 23 رو میخونید، خصومت بین عیسی و رهبران مذهبی رو ملاحظه کنید که تبدیل به یک نظام میشه در این باب عیسی چیزهایی مثل این میگه وای بر شما ای ملایان و فریسیان ریاکار شما دریا و خشکی رو طی می کنید تا کسی را پیدا کنید که دین شما را بپذیرد و وقتی که موفق شدید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 اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع کسافات است. شما هم همین طور مردمانی درست کار ولی در باتن پر از ریاکاری و شرارت هستی. اما این باب که توبیخ آشکار رهبران مذهبی هست با متن زیبایی که بیانگر شفقت ایسا هست تمام میشه. ای اورشلیم، ای اورشلیم ای شهری که پیامبران را به قتل لسانیدی و رسولانی را که به نزد تو فرستاده شدند سنگسار کردی.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 در ضمن هشداری در مورد روز داوری هم هست بابهای 24 و 25 متا به مباحثات کوه زیتون معروف است عیسی و رسولانش در محوطه معبد هستند رسولان در مورد اهمیت معبد صحبت می کنند عیسی در پاسخ میگه آیا این بناها را نمیبینید یقین بدانید که هیچ سنگی از آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند بلکه همه فرو خواهند ریخت وقتی عیسی این رو میگه رسولان از او میپرسند به ما بگو این امور کی واقع خواهد شد و نشانه آمدن تو و رسیدن آخر زمان چه خواهد بود در پاسخ به سه سوال اونها عیسی تعالیم بابهای 24 و 25 رو به اونها میده مباحثه کوه زیتون واقعا جواب عیسی به سوال رسولان در خصوص پایان دنیا هست برگشت ثانویه او و ویرانی اورشلیم وقتی این مباحثه رو مطالعه میکنید طوری مطالعه کنید که یکی از های عهد قدیم رو مطالعه می‌کردید. یادتون انبیا چطور به اسارت رفتن به بابل و بازگشت از اون رو شرح میدادند اونها جزئیات تمام های اسارت بابل رو با مسیح مسیحایی در هم می‌آمیختن که آمدن ثانویه مسیح رو پیش‌بینی می‌کرد. همون چیز رو اینجا هم در متا 24 و 25 در مباحثه کوه زیتون در درک اینکه عیسی چه واقعی رو شرح میده سخته. نابودی اورشلیم میتونه جواب این سؤال باشه که که این وقای اتفاق خواهد افتاد که سنگی بر روی سنگی باقی نخواهد ماند. این واقعه در سال هفتاد میلادی اتفاق افتاد. رسولان همینطور پرسیدند تو چه زمانی خواهی آمد؟ نشانه های آمدن تو و بعد پایان دنیا چه خواهد بود؟ عیسی نشانه های آمدنش رو به اونها میده. اگه نبوت های کتاب مقدسی رو مطالعه کنید، نشانه های آمدن او بسیار با نگاه کردن به اخبار رادیو ها و تلویزیون و روزنامه میتونید نشانه ها آمدن او رو ببینید شما اخبار جنگ ها و شایعات جنگ ها رو میشنوید. منظورم هم جنگ های سرد هست و هم جنگ گرم. گرد اقوام بر علیه یکدیگر می جنگ پادشاهی ها بر علیه یکدیگر میچنگن قحطی ها، زلزله ها کفر و از دست دادن ایمان ها رو میبیید محبت رو به سردی میره انجیل با زحمت زیاد در دنیا موعظه میشه تمامی این وقای نشانه از آمدن سانویه او هست بعد از اینکه عیسی ایسا نشانه های آمدنش رو در باب 24 و 25 میده سه مثل برای ما میاره در این مثل های سگانه ایسا به ما میگه که اولا آمدن سانویه او داوری بر هر ظرف خالی خواهد بود در کتاب مقدس روغن نماد روح القدس هست عیسی مثل باکره های نادان و حکیم رو به ما میده با کره های حکیم برای چراغ‌هاشون روغن برداشتند اما نادان ها روغنی نیاوردند اون‌هایی که روغن نیاوردند نماد کسانی هستند که روح القدس رو دریافت نکردند بازگشت خداوند در این مثل با آمدن داماد به تصویر کشیده شده با کره هایی که روغن ندارند نزد اونایی میان که روغن دارند و میگن کمی روغن به ما بدید و بعد این کلمات ترسناک رو میشنوید که میگن دیگه خیلی دیره بدید واس کسانی که روغن میفروشند بخرید اونا میرند و دیوانه دنبال روغن میگردند وقتی باز میگردند درها بسته شده و اونا نمیتونن وارد بشند. در این مساله اسا تعلیم میده که آمدن او داوری بر هر ظرف خالی خواهد بود پولوس رسول به ما میگه که در این دنیا دو نوع مردم وجود دارند کسانی که روحانی هن و کسانی که روحانی نیستن. در روبودن کلیساها که در اینجا شهرت داده شده وقتی عیسی برمیگرده یکی ربوده خواهد شد و دیگری ترک خواهد شد داوری او بر کسانی خواهد بود که روحانی نیستند و ترک شدهاند. یک بار دیگه با این سوال مواجه می‌شیم دو مرد روی نیمکت هستند شما کدام یک هستی ازتون میخوام خودتون رو در این مسئله ها ببینید آیا شخصی روحانی هستید همونطور که در انجیل مسیح میبینید چیزی برای باور کردن و کسی برای دریافت کردن هست آیا روح القدس رو دریافت کردید؟ در لغا باب 11 ایسا به ما میگه که چطور روح القدس رو دریافت کنیم. جواب او اینه که ما باید مرتبا درخواست کنیم، مرتبا دنبالش بگردیم و مرتبا بکوبیم. وعده او اینه: سوال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. به وعده عیسی مسیح باور کنید و امروز شروع کنید به و بجوید و بکوبید. دومین مثل در متا 25 مثل مهارت ها هست. در این مثل عیسی به ما تعلیم میده که داوری او بر هر دست خالی خواهد بود بر هر کسی که در بازگشت عیسی چیزی در دست نداشته باشه. در این تمثیل حیرت انگیز عیسی در مورد نجات ما صحبت نمی کنه، بلکه در مورد خدمت ما حرف می زنه. از فرصت خدمت به او خدمت کردن و انجام اراده ای او این اندیشه از اونجا ناشی میشه که عیسی میگه آمدن او داوری بر دستهای خالی خواهد بود و بعد مسل سوم در متا 25 به ما میگه که آمدن ثانویه مسیح داوری بر هر قلب خالی خواهد بود برای کسانی که گرسنه و تشنه و تنها و برهنه و بیمار و زندانی بودند چیکار کردید آیا به گرسنگان غذا به تشنگان آب دادید آیا از افراد تنها پذیرایی کردید به ملاقات بیماران و زندانیان رفتید داوری امتحان نهایی الهیات نخواهد بود این مسل به ما تعلیم میده که ما متناسب با پاسخمان به نیازهای افرادی که سر راهمان قرار میگیرند داوری خواهیم شد این مسل نشون میده که بازگشت او داوری بر هر قلب خالی خواهد بود موضوع در این داوری این خواهد بود که برای مردمان فقیر چیکار کردید برای افراد تنها و زندانی چیکار کردید برای گرسنگان و افراد اوریان چیکار کردی. آیا قدمی در راستای رفع نیازهاشون برداشتید؟ به دنبال های کوه زیتون با بزرگترین بحران زندگی عیسی مسیح مواجه میشیم. در اینجا به بررسی عمیق این ها نخواهیم پرداخت و اون رو در انجیل یوحنا عمیقا بررسی خواهیم کرد. وقتی در مورد مرگ و قیام عیسی میخونید باید بفهمید چیزی که بهش هفته مصیبت یا هفته مقدس میگیم در واقع شامل یک سری وقایع بود. وقتی این قسمت از انجیل متا رو می به این وقایه دقت کنید قبل از هر چیز به الگوی دعای مسیح توجه کنید که من خیلی اونو دوست دارم عیسی به باغ میره و عرق میکنه. عیسی ایسا کمی جلوتر رفت رو به زمین نهاده و دعا کرده گفت ای پدر اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن اما نه به اراده من بلکه به اراده تو وقتی باب شش مطار رو بررسی میکردیم، گفتم که چیزی که اصطلاحا بهش دعای خداوند میگیم باید دعای شاگردان خونده بشه اما این دعایی هست که باید دعای خداوند خوانده بشه نه به اراده من بلکه به اراده تو انجام بشه آیا تا به حال این دعا رو کردید اگر دکتر به شما بگه بیماری بدخیمیدارید، دارید میتونید اونطور دعا کنید ای پدر اگر ممکن است این پیاله را از من دور کن اما نه به اراده من بلکه به اراده تو شاید تا زمانی که زندگی شما یا یکی از عزیزانتون به حالت تعلیق در بیاد نتونید ارزش این دعا رو درد کنید من بعضی ها رو میشناسم که میگن نباید دعا کنید که اگر اراده تو هست من با این مخالفم چون عیسی به ما الگوی دعایی داده که اونطور دعا کنیم عیسی دعا کرد پدر این چیزیه که من دوست دارم من بعضی ها رو میشناسم که میگن نباید اینطور دعا کنید که اگر اراده تو هست من با این مخالفم چون عیسی به ما الگوی دعایی داد که اونطور دعا کنیم. عیسی دعا کرد، پدر این چیزیه که من دوست دارم. بگذاریم پیاله از من بگذرد. اما این طبق اراده تو انجام بشه، نه به خواست من. تا زمانی که نگیم، نه اراده من، بلکه اراده تو، من فکر نمی کنم دعاهای ما مسیح گونه باشه. به علاوه این الگوی دعایی در این بخش از متا، مطلبی درباره مشارکت یا آین اساسی مسیحیت میخونیم ما به اون اشعار ربانی، سفره خداوند یا شام خداوند میگیم. تعالیم بزرگی در این اشعار ربانی وجود داره. من مدت 20 سال شبانی خانواده های نیروی دریایی رو به عهده داشتم و متوجه شدم که وقتی ملوانی به سفر دریایی میره، عکس او برای خانواده خیلی اهمیت پیدا میکنه. در مدتی که سرپرست خانواده در سفر بود، اونا عکس او رو که در گوشه اتاق قرار داشت می و در جایی در معرض دید قرار میدادند. چون می استند که او به سفری نه ماه رفته و وقتی ملوان باز می گشت باز هم عکس رو در گوشه ای از اتاق قرار میدادند چون دیگه به عکس نیاز نداشتند و خود ملوان در خانه و همراه اونها بود همین فکر در مورد اشعای ربانی هم صدق میکنه وقتی عیسی داشت میرفت او به شاگردانش گفت می خوام عکسی از خودم به شما بدم و میخوام تا وقتی برمیگردم به اون نگاه کنید و این عکس اشعای ربانی هست. عیسی مسیح دوباره باز خواهد گشت تا وقتی برگرده اشاع ربانی تصویری از او هست که برای ما به یادگار گذاشته. او میخواد به عکس او نگاه کنیم و به یاد او او رو بپرستیم تا روزی که برگرده. وقتی عیسی شام فسح رو با رسولانش میخورد، میدونست که بعضی از اون مردان کلماتی به یاد بود اون مراسم در اناجیل خواهند نوشت. من معتقدم که او داشت به اونا میگفت وقتی تصاویری رو با کلمات برای دنیا ترسیم میکن که منو به یاد بیارن، میخوام بهتون بگم که تصویری که میتونه واقعیت رو نشون بده اینه و بعد به صلیب ششاره میکنه و میگه تا وقتی برگردم میخوام منو با صلیبم به خاطر بیارید. از خیلی‌ها شنیدم که میگن ما صلیب عیسی رو دوست نداریم چون اونا میخوان به عیسی قیام کرده فکر کنن. من مخالفم. چون معتقدم عیسی گفت منو بر صلیب به بیارید. نه به خاطر اینکه اون نیاز داشت که به اون ترتیب به یاد آورده بشه، بلکه به این دلیل که ما نیاز داریم که او را به اون شکل به بیاریم ما نیاز داریم او را بر صلیبش به یاد بیاریم چون مسیح بر صلیب اساس نجات ما هست قیام عیسی اثبات اون نجات هست وقتی عیسی و شاگردانش دور اون سفره نشستهاند خیانت در حق عیسی را ملاحظه کنید فقط به خیانت یهودا فکر نکنید پتروس او را سه بار انکار کرد و کلام خدا میگه وقتی او دستگیر شد همه اونا او رو ترک کردند و فرار کردند برای من جالبه که وقتی عیسی به اون مردان که تا حد مرگ ترسیده بودند گفت یکی از شما به من خیانت خواهد کرد اونها اونقدر از خودشون نامطمئن بودند که هر یکی سوال میکرد آیا اون منم؟ آیا من به تو خیانت خواهم کرد؟ همه جز پتروس این سوال رو پرسیدن اما پتروس یک حرف دیگری زد همیشه از کسانی که در چنین وضعی حرف دوری کنید. پتروس سه بار او رو انکار کرد. به هر حال همه او را انکار کردند چون او رو رها کردند و فرار کردند. وقتی عیسی مصلوب شد، اعضای کلیسا به صفر رسیده بود. بعد از قیام عیسی بود که کلیسا شروع به رشد کرد و اعضا افزایش یافتند. وقتی شرح مصلوب شدن را در اناجیل میخونید این را ملاحظه کنید. نویسندگان اناجیل وارد جزئیات مصلوب شدن نمی‌شوند. وقتی به اونجا می‌رسید مسلوب شدن عیسی با این کلمات توضیح داده شده آنها او را مسلوب کردند. فقط همین هر چهار نویسنده اناجیل همین طور گزارش دادن آنها او را مسلوب کردند. من فکر میکنم این چهار کلمه به اختصار به ما میگن که جزئیات مسلوب شدن مسیح نیست که اهمیت داره بلکه خود مسلوب شدن اهمیت داره عهد قدیم که مرگ او را نبوت کرده در اشعیاء 53 و مزمور 22 بیشتر در مورد اهمیت مرگ او با ما صحبت میکنه رسالات عهد جدید هم که بعدا بررسی خواهیم کرد بیشتر در مورد مفهوم مرگ او صحبت می کنند اما در اناجیل فقط این گزارش شده او را مصلوب کردند مسئله مهم مصلوب شدن نبود اون روزها خیلی از مردم مصلوب می شدند اما مسئله مهم این بود که عیسی را مصلوب کردند مهم این بود که کسی که بر سلیب میمرد چه کسی بود هویت او بود که به مصلوب شدن اهمیت بخشید. اگر بر کلمه اول تاکید کنید، آنها او را مصلوب کردند، سؤالی پیش میاد. چه کسانی عیسی را به مرک سپردند؟ میتونید بگید رومیان. اما میتونید کمی بیشتر فکر کنید و بگید نه، این یهودیان بودند که او را به مرک سپردند. اما اگر سوابق را به دقت بخونید، میبینید که رومیان یا یهودیان نبودند که او را تسلیم marked کردند. خدای پدر بود که او را به مرگ سپرد در اشعیا ده می میخونیم خداوند میفرماید این خاست من بود که او رنج بکشد و بمیرد این خدا بود که جان او را برای گناهان ما قربانی کرد یوحنا می میگه زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود بنابراین این خدا بود که پسرش رو به خاطر گناهان من و شما به مرگ بر صلیب سپرد. شاید بگید مسیحیت وقتی مسیح مصلوب شد یک نهزت مرده بود و تا بعد از قیام اعضای کلیسا صفر بوده. چرا قیام او باعث گردآوردن آوردن پیروان شد؟ در انجیل مخصوصاً در انجیل یوحنا ملاحظه می‌کنید که عیسی مکرراً به رسولان یا کسانی که در حضورش بودند می‌فرمود چیزی که ثابت خواهد کرد او در زمان مصلوب شدن بیش از یک انسان بود قیام او خواهد بود وقتی گفتند به ما نشانهای بده او گفت این معبد را خراب کنید و من بعد از سه روزون رو را برپا خواهم کرد منظورش بدن خودش بود به این دلیل یوحنا به ما میگه بعد از اینکه عیسی قیام کرد رسولان چیزی رو که عیسی در مورد قیامش گفته بود و آیات رو به یاد آوردند این آیات آیات عهد قدیم بودن مثل آیاتی که پتروس در روز پنتیکاست از مزمور 16 معظه کرد این آیات مرگ و قیام عیسی را به تصویر کشیدن. بنابراین وقتی عیسی قیام کرد معجزه قیام او ایمان را در پیروان او زنده کرد در کتاب مقدس ملاحظه می‌کنید که مرگ و قیام عیسی دو واقعیتی است که زینت پخش انجیل مسیحیان هست. انجیل مسیح یک واقعیت نیست بلکه دو واقعیتی است که رسالات عهد جدید تاکید خاصی بر اونها داره. مرگ و قیام عیسی مسیح. بعد از قیام عیسی در انتهای اناجیل معموریت بزرگ رو میبینیم. قبل از مرگش عیسی به رسولان گفته بود که بعد از اینکه رنج کشیدم شما را در جلیل ملاقات خواهم کرد. اگر شما قرار باشه بمیرید یک چنین قرار ملاقاتی میذارید که بعد از سه روز شما را در جلیل خواهم دید. عیسی به خلیها گفته بود که میخوام در جلیل به دیدن من بیایید. بعد از قیام اونها به خاطر آوردند و به جلیل رفتند. در نوشته ها اومده که حدود 500 نفر در جلیل گرد آمده بودند تا عیسی را ببینند. این اولین باری نبود که او خودش رو به صورت زنده به اونها ظاهر میکرد اما این بار بر اونها ظاهر شد و مأموریت بزرگی به اونها داد. به اونها گفت: "پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر پسر و روح القدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتم انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم کتاب اعمال رسولان به ما میگه اونها رفتند شاگرد ساختند و شاگردان را تعمید دادند و به اونها تعلیم دادند اونها هر کاری که عیسی ازشون خواسته بود انجام دادند کتاب اعمال رسولان اساسا تاریخ مکتوبی هست که به ما میگه پیروان عیسی معمولیت بزرگ را چگونه به انجام رساندن؟ وقتی معموریت بزرگ ایسا را به دقت مطالعه کنید میبینید که به لحاظ گرامری اون یک فعل امری و سه وجه وصفی داره فعل امری اینه شاگرد بسازید و وجوه وصفی اینها هستند، رفتن، تعمید دادن و تعلیم دادن این نشون میده وقتی ما به دنیا میریم هدف ما فقط این نیست که به اونها بگیم اینجا یک چیز رایگان هست و میتونید، بیمه آتش سوزی داشته باشید که به جهنم نخواهید رفت میتونید بهترین های هر دو جهان رو داشته باشید هدف ما اینه شاگردانی برای عیسی مسیح بسازیم ما در بعضی از این گفتگوها دیده ایم که مفهوم شاگردی چیه بهای شاگردی چیه و برای شاگرد شدن چه بهایی باید پرداخت خب این معموریت بزرگ بود شاگرد بسازید و روشش اینه که بروید تعمید دهید و تعلیم دهید من فکر می کنم که تعلیم دادن یکی از زیباترین راه‌های شاگردسازیه چون وقتی مردم رو به کتاب مقدس هدایت می و اونها خودشون به کتاب مقدس مراجعه می از شنیدن کلام ایمان هم پیدا می یکی از خادمین بزرگ دکتر رابرت اسکلوور گفته معموریت بزرگ منشور کلیسا هست ماننده هر تشکیلات دیگری کلیسا باید بر اساس منشور شرکت کنه وگرنه میتونه از کار بیفته و متوقف بشه من فکر میکنم این جمله عمیقی هست هرگز این رو فراموش نکنید چیزی که بهش مأموریت بزرگ میگیم هدف کلیسا هست هدف کلیسا اینه که فعالانه به تمام جهان بره دنیا شاید نیاد و اونو نگیره ما میتونیم برای عیسی شاگردان بسازیم ما باید اون شاگردان رو تعمید بدیم و هر چیزی رو که عیسی به ما آموخته به اونها تعلیم بدیم و اگر این کار رو نکنیم راکت خواهیم بود امیدوارم شاگردی وفادار و شاهدی وفادار برای مسیح باشید. دسته خوبم متشکریم که با ما همراه بودیم. ما مطالب زیادی رو در درس امروز یاد گرفتیم. این فقط یه بررسیه. برگردید و آخرین باب متا رو یک بار دیگه مطالعه کنید و از خدا بخواید چشم و گوش شما رو باز کنه تا چیزی رو که اون میخواد یاد بگیرید، ببینید و بشنوید. امیدواریم این درس ها شما رو در ایمانتون تشویق کنه. خدا رو به خاطر شما شکش میکنیم و دعا میکنیم شما رو به فراوانی برکت بده و شما رو به کار بگیره که باعث نجات دیگران بشید. به اونها بگید که مسیح به خاطر اونها مرد تا نجات رو برای اونها برمقان بیاره و بعد از سه روز از مردگان قیام کرد تا یک بار برای همیشه ثابت کنه که اون خدا هست تا برنامه بعدی دعا میکنیم محبت اون و قدرت قیام اون بر شما و زندگی شما قرار بگیره